خب دوستان عزیز اجازه بدن امشب بعد از کلاسمون لایه محافظ رو دریافت میکنند دوستان لایه محافظ در واقع ما رو از تششعات معیوب همون که امروز صحبت کردیم تششعات معیوب سلولی و تداخل موجودات غیر ارگانیک که بعدها و آشنا میشید با این اصطلاحات و با این مفاهم و خلاصه اون رو که مزهر هست برای ما جلوگیری گیری میکنه در حین ماموریت. در حین معمولیت یعنی که ما در حال کار با شبکه شعور کیانی باشیم وقتی نیستیم نباشیم اون هیچی لذا ما نیاز داریم به یک ساعتی که دوستان این ساعت رو مشخص بکنن معلوم بکنن و در این ساعت این ارتباط رو برقرار بکنن تا ببینن لای محافظشون چطوری هست لای محافظ هر کسی مثل اثر انگشتشه و نحوه اجراش کاملا با نفر دیگهی متفاوته ممکنه برای کسی پنج دقیقه طول بگشه برای کسی یه ساعت دو ساعت سه ساعت حتی بیشتر بنابراین ساعتی رو در نظر بگیرید که وقتتون آزاد باشه اگه طول کشید در دقیق خاطری نداشته باشین. گزارش لای محافظ و جلسه بعد با هم بررسی میکنیم. موضوعی که دوستان به خاطر بسپارن این هست که این ساعتی رو که به ما میدید چه ارتباط برقرار بکنید. چه نکنید یادتون بره خوابتون بره نمیدونم. در هر حالتی باشید تو اتوبوس باشید هواپیما باشید نمیدونم بر هر صورتی اجرا میشه بنابراین بعد از این ساعت شما میتونید کار عملی با حوشمندی جمعی یا شبکه کیانی رو تجربه بکنید و داشته باشید این تجربه رو باید داشته باشید بنابراین جلسی دیگه دوستان نگن یکی بگه من یادم رفته بودید بشینم یکی بگه نمیدونم من آخه اینجوری بوده که بیش ای بدونید که نداریم در هر صورت ساعتی رو که شما به ما بدید این لای محافظ اجلا شده و شما بعد از اون میتونید وارد فعالیت عملی با شبکه شعور کیهانی بشید چانم؟ خیلی در, در خلال 24 ساعت که الان توضیح میدم شما با اصول ساعت و قرار رو همین چیزه الان آشنا میشه خب رس ساعت دلیل نداره شما میتونیم بگیم 15 و 50 دقیقه نه الان نه نه نه دقیقه نه رس ساعت راسه ساعت از اینجا تا اونجا نه اینو این کارو نکنید فقط راس ساعت مثلا 15 و 5 دقیقه ولی مشخص باشی کی رو 24 ساعته هست اصولا هست شما چند نفر امتحان کردن دیدن 24 ساعت ارتباطتون هست خب 24 ساعته ارتباطتون دیدین که برقرار بود بسیار ساعته هست اما اون ساعت ما پیمان با هم میبندیم قرار میگذاریم. مثل مثلا پسید نماز آیا بارگاه الهی تعطیلی داره تعطیلی نداره. هر زمانی میشه رفت به بارگاه او به درگاه او. اما میاد چیکار میکنه؟ زمان میذاره. میگه طلو اینجا اونجا و اینا رو زمان میذاره که پیمان باشه. خب من توضیح بدم انواع کارای را که شما در این خصوص در این مرحله میتونید تجربه بکنید تحت این عنوان کلان میتونه از راه دور و راه نزدیک انجام بشه انجام راه دور این قضیه که ساده تره من ابتدا صحبت میکنم خدمتتون و بعد راه نزدیک و راجع به صحبت میکنید راه دور همزمان داریم که شما همزمان همین الان با یه وسیله مثل تلفن خب در ارتباط هستین همزمانه توجه بکنید که شما در این ارتباط راه دور الان و بعد دریافت لای و چند تا استارتی که تا آخر برنامه داریم روی این ارتباط راه نزدیک شما تا به کسی بگید در واقع گزارش بده الان ببینم چه خبره اون مسئله اسکنه شروع میشه دقت میکنین؟ حالا من با روش های قافل گیری هم خدمتون میگم تا دوستانی که فکر میکنن که تلقینه خوب دوستانی که فکر میکنن که مثلا ممکنه ممکن هم نقش داشته باشه بطلان نظریه ثابت بشه خب بنابراین مثلا فرض کنید که این روش قابلگیری پای تلفن طرف میگه که من این مشکل رو دارم مثل سرم درد میکنه دلم درد میکنه شما فورا بهش بگید که خب یه لحظه چشت اوبند چشت اوبند به من بگو ببینم چی میشه هر اتفاقی میوکده الان به من بگو خب این دیگه که شما جان هیچی هیچی شما متصلی به مرزی که نظرتون بر انجام کار میشه مسئله کار جاریست تا میگید که بگو ببینم چی میشه میبینید که او میگه آخ اینجوری شد اونطوری شد الان نیمتون فلان شد بسار شد علاهم اسکن به شما چیکار میکنه اعلام میکنه و بعدم هم هم با کمال شگفتی میبینید که آره این نتیجه جالبیه خب حالا پس این یک موردیست که به این صورت عمل میکنید اما یک مورد هم از توضیح دادید بهش بعد میگید این اونطوری اون اونم حالا اونجوری میشه اونجوری میشه و حالا پشت تلفن بعد میگه خیلی خب حالا انجام بدیم ببینیم که چی میشه و بعد میگیم خب گزارش بده این در واقع اونم شروع میکنه گزارش میده ما متوجه میشیم که کاری داره انجام میشه یک اتفاقی داره صورت میگیره. که این اتفاق کیفی است یعنی ما که نه به اون نزدیکیم نه چیزی بهش دادیم نه دخالتی کردیم هیچ چی نیست یک تداخل کیفی است خب یک ارتباط در ارتباط راه دوری غیر همزمانه در ارتباط غیر همزمان دو طرفه و یک طرفه داریم دو طرفه شو صحبت کنیم مثلا من بهشون میگم که خب در رابطه با مشکلش میگم که میخوای ارتباط برقرار کنیم میگه آره میگم شب چه ساعتی وقت داری بر ارتباط میگه ده شب و دوازده شب یا فردا صبح و پس فردا همین چیزایی رو در نظر داره مثلا میتونه چند تا ساعت رو در روز به ما بده میگه خود ساعت چی بده؟ ساعت چی میده؟ ما این ساعت رو فرض کنیم که یه لیستی داریم خب الان من ساعت رو ازشون گرفتم اما ایشون قرار ساعت ده شب بیان تو ارتباط آیا من ده شب باید باشون با مرتبط بشم؟ نه من همی الان اسم ایشون رو به شبکه اعلام میکنم اسم ایشون میره تو شبکه یعنی اسمشو دادن چه جوریه؟ یک نگاهه یه نگاهه اسمشو میره تو شبکه ایشون شب ساعت ده و دوازده شب شیش صبح فرس ساعت که داده در طول شبانه روز سر ساعت ها میشینه ارتباطشون میگیره بعد از یه رو دو روز زنگ میزنیم خب. چی شد؟ میبینیم که یک گزارشی داره حالا اگه با ده نفر کار میکنیم یک گزارش آماری پیدا میکنیم درست شد یا نه؟ بنابراین الان ببینید ما چه لیست داریم چقدر لیست داریم بعد داریم مال شما هست های متعدد داریم تو هر حلقه چقدر کارهای مختلف آدمهای مختلف خوب یعنی حلقه های متعدد داریم در هر حلقش یه سری کار رو انجام میشه دیگه خوب ببینید ما چقدر افراد داریم که با ما در ارتباط هستن چند هزار نفر خوب حالا من الان اینجا هستم همین الان که اینجا هستم. چند نفر. همی الان تو ارتباط هستن توی اتصال هستند. چه جوری این کار انجام میشه؟ ما صبح یا شب به منگ پره هستیم لیستامون رو چیکار میکنیم؟ لیستامون رو میدیم به شبکه اینا همه میره توی شبکه الان اینا رو که من نگاه کرد توی شبکه هست. خب یعنی همون نگاه اینا توی شبکه است. حالا بعدا با مکانیزم های دقیقتری آشنا میشیم. پیدا شما اینا رو داشته باشین که، اینها رفت توی شبکه خب اون هم دارن ارتباطاتتون میگیرن نمیدونم بعدا میگیرن شما هم همینطوره میشن هم بیرید لایه محافظ میگیرید ارتباط هر ارتباطی رو تو تو این رابطه ارتباطون چیه؟ برقرار دارید میگیرید خب البته خیلی سخته میدونم خب چیانم خب شما نظر کردید بهش یا نکردید یعنی با اون نفری که به شما میخواد زمان بده یا شما میخواد به من زمان بدی خب بارا خب ما گفتیم بارا صدوم هم میخواد خب گفتم خب باید اسمو الان شما به من دادید منم باید نگاش کنم نگاه نکنیم خب یا البته توی این مداره ما توی مدار دیگه هم هستیم اونا رو بعدا آشنا میشید ولی فعلا ای باید باشید دقت فرمودین شمایی باید باشید کاری صورت بگیره اگر نباشین کاری صورت نمیگیره این براتون ثابت میشه پای شما اگر در میون نباشه امتحان کنید نه یک بار هزار بار امتحان کنید ببینید کاری انجام میشه خب الان ببینید چقدر آدم های میگن خود نیدم چید فلان بیزار، نه از نیاز کاری انجام نمیشه اما حالا شما همون رو پاتون تون جلو در واقع میخواد برای همونها برین کار بکنین دیگه خب ببینید که چه تغییراتی رخ میده صورت میگیره بنابراین این هوشمندیه منتظر شماست منتظر شماست ببینید که از شما از روزی آسمانی انفاق میکنی یا نمیکنی انفاق کردی شامل اون میشه انفاق نکردی شاملش نه میشه هرگز نمیشه هرگز تلاجعه برمودین حالا خب اینا براتون ثابت میشه حالا امشب که نباید سب کنید برین کار بکنیم ظرف یه هفته میتونیم همین را برامون ثابت بشه جوهرم اینو را بدین خدمتشون من شنیدم ولی دوستان بشتون این نظری که ما میاندازیم خون بدونم فقط در رابطه با مشکلات جسمی اون شخص یا غیر از جسمی رو هم شامل میشه مثل غیر از جسمی مثل چی؟ مثلا همین دو دو خلا هر چیزی مثلا گشایش کار یا هر آرزویی که مثلا ممکنه وجود داشته باشه خب توجه بکنید ما حلقه های متعددی داریم توجه می‌کنید حلقه های متعددی داریم گشایش کار به اون صورتی که در جایی هست نه ولی از اون جایی که ما در معرض بست شدن هایی قرار داریم بستگی های تششعاتی یعنی شما رو میتونم ببندن الان من شما رو میتونم ببندم شما میتونید رو ببندیم. ببندید, ببندید. همدیگه رو بستیم الان okay. به صورت‌های مختلفی اجازه بدیم بعد به دوره چهار این ها رو که چه جوری رو می‌بندیم خب چه جوری رو می‌بندیم باز به دو طریق ارادی و که هر کسی انجام میده و به صورت تخصصی خب این دوتاشو تاشو بشناسیم بعد می‌بینید که تو اون حلقه در واقع اون بستگی رو چی میکنه باد میکنه شما راحت میشه باید به ت کتون نه دهین. نهگه ببینیم توی حلقه اینجوری کنیم بعد با یه سی اصلا شمشه تلا بیان خدمت شما میگن که کارتون گشاهش بدا کرد. کار زمینی قانون زمینی. نه اونطوری نیست. نظررم از یه اجوری کنیم ببینیم که نمی ولی همه ما بستگیهایی داریم این بستگی هم دوباره وقتی این صحبت مییم مییم اه همش تششوادی همش ازم متافیزیک نیست فیزیکه و نمی یه جوری ما همدیگه رو میتونیم چیکار کنیم ببندیم و به اصطلاح همین کارام کردیم هم همون همدیگه رو بستیم و همدیگه رو گرفتیم سفت و سخت اونجا این ها رو آشنا میشیم و میریم تو حلقهش چیکار می کنیم قچچش می یه کارای عجیب به رخ میده میتونی از دوستان بالاتر دوره 4 رو سوال بکنید ببینید که چه کارای مثلا جالبی انجام میشه اما اینجا حلقه کیفیت وجودی است که کیفیت جسمی و روانی و کیفیت‌های وجودی است. درست شد؟ ببینید شما به محض اینکه به یه نفر میگید ببین چی میشه؟ اسکن شروع میشه. من چطوری بگم دیگه؟, دیگه یعنی دیگه نظر شما، ذهن شما رو کسی اسمی معتوب بشه صدای رو دارید میشنوید اسمش هم نمیدونید به مرز اینکه که بگید حالا ببین چی میشه بورن این جریان را میفته این جریان نیاز به تشریفات نداره نیاز به کلام خاصی مراسم خاصی تشریفات خاصی نداره شما به مرز اینکه که بشکن و بزنید جریان است الان توضیح میدم الان توضیح میدم بیام سراغ راجبه اینه بذارید من اینو توضیح بدم اگر اول مرتبط با این موضوع چون امشب میخواد برید مشغول بشید بعد این چیزا رو نمیدونید اون وقت سرگردان میمونید که موضوع چیه بذارید من توضیح بدم بعد از توضیحات با هم صحبت می‌کنیم خب غیر همزمان دو طرفه پس اینه که دو طرف یعنی با صحبت کردیم، ساعت گرفتیم، قرار گذاشتیم قرار با هم گذاشتیم اون هم سر ساعت میاد دنبال میکنه میبینه که میشه یعنی ده نفر شما ارتباط بدید میبینید که حالا یه نفرش یه جوری دو نفر فلان سه نفر جدی نگیرن چهار نفر این دام. یکی این داون پنج نفرش میبینید که نژد داره حالا تو مرحله اول تا بعد با هم آمارهامون رو بیاریم ببینیم ما که انجام دادیم میشون بگه چند درصد من نژد دارم ایشون ایشون ایشون ایشون, ایشون, ایشون رو هم رو با همدیگه حساب کنیم حالا منم این چیزشو کم میکنم خب این تا اون مرحله آخر جلسهمون که هر کسی رو بیاره پیشنهاد بده خب این درمان دو طرفه حالا درمان در واقع یک طرفه زمانی است که طرف ما مقابل ما با ما همکاری نداره یا شما نمیبینید که برید با اون صحبت بکنید و یا اینه که اطفال و بیماران اقمایی و نمیدونم افراد سالمند و اینها که اصلا شما گزارش میتونید. یه درید رد اثر تلقی. اثر تمرین تلق شما رو اطفال هم کار میکنید، روی بیماران اقمایی هم کار میکنید. روی سالخوردگانم اصلا اونا نمیفهمن شما چیکار میخواد بکنید. درست شد؟ روی عقب مانده های ذهنی هم سندرم داون و فلان و نمیدونم همه اینا رو کار میکنید. خب وقتی کار کردید بدلان این چیزا رو ثابت میشه چون میبینید که به مرضی که میگه به صحبت میشه ما جراهای ادواق میوفته که دیگه اثر این قژها ها نمیتونه باشه خب حالا در مورد پس این گروه اقمائی و نمیدونم اطفال و نمیدونم سال خردگان و نمیدونم یا مثلا پس کنید بیماران آلزایمر این مثلا یه بیماره آلزایمر شما نمیتونید باه ارتباط کلامی برقرار بکنید بیماران آلزایمری و در حالی که ما داشتیم بیماران آلزایمری که وضعیتشون خوب خوب شده توی این مورد شما به طور یک طرفه اسم اونا رو اعلام میکنید حالا نهایتا اینه که اطراپیانشون در جریان قرار بگیرن یعنی مثلا مادرین در طفل در جریان قرار میگیره بهش بگیم که حالا زیر نظر بگیر این طفل رو ببینید که چطوریه به ما گزارش بدید و بعد اون گزارش جالبه خب اما در مورد اون دسته که اول صحبت کردم کسانی هستند که همکاری ندارن آقلن، بالغن، خب سوپردانه هستن و اون همکاری لازم رو نمی کنن ولی خب به مادر ما هستن، پدرمونن، خواهر و برادر رو نمی دارن. ما اصرار داریم حالا یه کاری روی اونا انجام میشه. در این صورت ما اسم اونا رو یه طرف اعلام می کنیم متوجه میشیم اینا یه درصدشون نتیجه ای دارند و متأ نبر اندازه گروه اول اما به یه آماری داریم براشون اینو بررسیش بکن خوب این در مورد راه دور در مورد راه دور اگه سوالی هست با هم بررسی کنیم جانم جانم در مورد حیوانات گیاهان اشیا دوره هفت اونو بذارید اما در مورد گیاهان و حیوانات هم دوباره میتونید کار بکنید ما خیلی از دوستان دامپزشک داریم که دارن از این قضیه استفاده میکنن. خب دوباره میبینید که دوباره بزرم میبینید که براشون ثابت شده که وقتی کار میکنن به صلاح گزارش دارن و نتیجه دارن و اینو به طرق مختلفی میشه مورد آزماش قرار داد خب و بعضی از دوستان از این کارا میکنن و این تسار رو دارن انجام میدن. ببینید اگر فرد افسردگی داشت باشه، تشتت داشته باشه تشدت ذهنی داشته باشه خب منظور اینکه که نمیتونه دریافت کنی منظورتون چیه؟ دریافت کنی یا احساس کنه. احساس نه دریاف، دریاب میشه کار انجام میشه که ما میگیم میتونیم سوال کنیم چند تا افسورده نتیجه گرفتن که دو بار سوال کردیم امروز درسته؟ خب اگر دریاف نکنن چجوری؟ پس درمان اتفاق خوب داده خب لذا احساس ممکنه نکنه من باز یه بار سوال کنم کسی هست که نتیجهی دوی درمان گرفته ولی احساس خوب نمیکرده. داریم چند نفر داریم؟ یعنی نتیجه درمانی گرفته؟ ولی احساس نیم در اونتو که وضعات چی بود بش... من مشکل اوتاویان دارم و هفته پیش اومدم اینجا خب روز سشنبهش دکتر رفته بودم دکتور. صبح رفته بودم دکتر که دو روز بعد از اون رفتم آزمایش دادم سشنبه جلسه اولی بود که ما اینجا خدمت شما بودیم بعد از این که آزمایشم اومد دقیقا دستام یعنی یه جوری شد که سیستم ایمنیم دفاع بدنم کم شد بله. و مثلا مقدار لنفوسیتا و, و گولبول های خونم با این که سرماخوردگی هم داشتم تا این مدت و باید مثلا یه عدد شد 7 هزار تا بالاتری رو نشون میداد پایین اومد بله. این نتیجه مثبتی بود که من فکر بگم گرفتم ولی احساس نمی ببینید یعنی در واقع نتیجه آزمایشگاهی در حال که یه نتیجه که در آزمانشکا معلوم بشه که چطوریه خب بنابراین از این مسئله زیاد برخورد می‌کنیم و اصلا ذهنمون رو نیاریم روی مسئله احساس کردن ما باید مشکلمون حل بشه و این مسئله احساس یه مسئله سنسوریه این مسئله سنسوری رو باید حل و فصلش کنیم حل و فصل میشه خب بیایم روی دست راه نزدیک راه نزدیک بدون تماس دست بدون تماس دست شما دیدین که اینجا ما نیروی کیهانی رو بدون تماس دست یک حالتش این بود که بهشون میگیم گزارش میدین اسکن با شور کیهانی ایشون که گزارش میده و ما هم دستمون تو جیبمون ایشون داره الان گزارش میده میگه این تو شد اون تو شد اون تو شد به این صورت یا اسکن با نیروی کیهانی خب این مطلبه بود البته درمان پولاریتی هم از ما بهش نیاز نداریم درمان پولاریتی اون که دست میکشی حوزه پولاریتی هم که دیدین الان چطوره شد حالا مکانیزمش رو جلسه بعد میگم اینو بذاریم جلسه بعد راج به صحبت کنیم که من اون مکانیزم اصولاً پولاریتی تراپی رو در پولاد درمانی رو با هم صحبت بکنیم که گفتم رشته دانشگاهیه و شما آشنا بشید در نظر آشنایی اما ما اصلا بهش نیاز نداریم فقط اینه که شما آشنا بشین. که این دست رو چه اتفاقی میفته چطوریه خب میایم راه نزدیک با تماس دست یکیش درمان موزهیه خب مثلا یکی آرنجش درد میکنه ما آرنجشو میگیریم الان استارت میزنیم رو دستتون خب دستشو میگیریم میگیم خب گزارش بده بعد هیچ توضیح هم ندادیم این چیه نمیدونم هیچ اطلاعی نداره که از زیده میتونه در رد اون مسئله ما دستشو میگیریم. میگیم به من بگو چی میشه دا شروع بعد لحظاتی بعد میگه درد کمتر شد کمتر شد کمتر شد خوب شد دیدم پیشونیش درد میکنه سینوزیت داریم، دوام دل درد داره قلب قبد درد هر چی دیگه شما دیدم دست میذارید و گزارش میخواد اونم چه اطلاعی نداره این درمان سریح سریح در حتی چند دقیقه شما نتایجی براتون ملموس میشه خب میگه من زانون درد میکنه درد های موضعی میتونید چیکار بکنید از این مسئله استفاده بکنید و در عرض چند دقیقه نتیجه معلوم میشه حالا توضیح زیاد هم نمیخواد خصوصا اگر دوباره گفتم از روش غافلگیری استفاده کنید روش غافلگیری که مثلا میاد حالا هر کی از میگه که آره آرنجان درد میکنید خب شما پوری غافلگیرش میکنید سب کن عرضه هم با این مسئله میتونید خب هم با این مسئله میتونید خب چش تو من چش من چی میگم هر چی متوجه میشید من بگو چش تو خب بگو حالا به چی میشه یعنی عقلشو پلج میکنیم عقلشو پلج میکنیم هرچی میگاه بگه که این چی میگه هیچ چی نگو هیچ چی نگو فقط به من میگو چی میشه اونم تا میخواد عقل وارد مناله بشه و خلاصه از اون عدا اصول در بیاره شما نمیذارید مجالید شما میگه فقط به من میگو چی میشه بعد میبینید که این خیلی سریتر بهتر راحتتر انجام شد رد. این صورت ما هیچی اصلا ما فقط اون مجال مداخله عقلشو رو ندادیم فقط گفتیم به من گزارش بده ببین چی میشه چی میشه حالا همین کارو با درمان موذی هم میتونید بکنید خب قاپرگیرشوبه برا جون چی میگی الان ببین چی میشه هیچی نگو هیچی نگو فقط ببین چی میشه به من بگو بعدا واسه دوزی میدم بعدا واسهت میگم اونا فکر میکنه خب حالا خوب فنیه یه چیزیه یعنی یه جوری عقلش رو کنید موفقی. عقل بیاد وسط این از کجا اومده حالا چرا فلام بوده حالا نمیدونم اگه به این سادگی بود که حالا نمیدونم چی میشد میدونید این مازره ها شروع میشه خب بنابراین یه ارتباط برقرار کنید اجازه بدین یه ارتباط اینو استاد استارت بزنیم این رو دستتون در واقع استارت اجازه بدین استارت بزنیم سرکار خانم سوال میکنن که یه دردی باید داشته باشه ما دست بذاریم یا نه خب اگه درد نداشته باشه دست بذاریم که اونم چیزی نمیفهمه شما هم که میشه الان رو میگین؟ نه نه ببینید اجازه بدین ما الان میخواییم درمان با دست و برای شما استارت بزنیم یعنی تفویزه خب الان یه نفر تو کوچه دست یه نفر رو بگیره، اورنج یکی رو بگیره، نگام هیچ اتفاقی نمیفته. اما الان دست شما تغییری میکنه که برید تغییراتش رو برای ما بیارین. استاتو بزنیم با هم صحبت میکنیم. چشمم بسته، چشمم بسته ارتباط برقرار بکنیم. هر جور هست فرق نمی کنه، اون انجام میشه. اجازه بدین. ورا استاتو برقرار بکنین. در چند دقیقه در بالاخره در حد دقایقی کار انجام میشید. خب الا انجام میدید ندش برای میارین دیگه. تو تا هم میتونید فقط گلو نباشه فشارم هم زیاد ندیم. یه دستیش ولی گلو رو نه. بله، شروع میکنیم کنیمیم. هیچی چشما بسته کارتون نباشه ارتباط برقرار بکنین؟ بله منم همونو گفت شروع کنیم خب خیلی ممنون مچکل خب حالا جانم به هر حال اینجا این مسئله نور و بند و وسط و همین چیزها در واقع داریم تو تجربه است. حالا این مسئله رو با خود این قضیه تحجبه بکنید جامعه ببینید ما راجب هیچ چیزی صحبت نکنیم بهتره خب اینجا این مسئله به این صورته شما عمل میکنید نتیجهش هم برامون میارید و من خواهش هم میکنم که همه اینا رو مخصوصا حالا مورد بعدیرم که توضیح میدم یه استار دیگه هم داریم من ببینم زمان کم نیاریم خب نه خوشبختانه بختمون خوبه جانم جانم بزر میخوام فرمودین که ارتباط جلوه رحمانیت خداست درست میگم حلقه های رحمانیت عام است درست مفهوم رحمان درست بله پس. وقتی ارتباط می گیریم در واقع جلوه ای از رحمانیت خدا رو ما داریم مشاهده می کنیم به این عبارتی که شما می یعنی در واقع ما داریم از اون رحمانیت استفاده می کنیم. از تسهیلات حرکت داریم به میشیم استفاده می کنیم. یه طرف دیگه ما شما فرمودین که تا شما این نیرو رو این ارتباط رو به کسی امفاق نکنید قطعا ارتباطش برقرار نمیشه و از این رحمانیت نمیتونه استفاده کن این قضیه با عدل الهی برای من متناقضه چرا باید خدا که عدلش برای همه بندگان یکسانه؟ بله مل... بله متعدد شدم ببینید این تحصیلات حرکت به این صورته که ما یه عالم کسرت داریم این عالم کسرت این عالم وحدت میگه اونی که به عالم وحدت میخواد بره اعتصمو به حبل لا جمعن و لا تفرقو به عالم کسرت نرو توجه میکنید برای کسیست که بخواد به عالم وحدت بره گفتیم رحمانیت عامه ولی شامل اینا نیست شامل ایناست برای همین شما باید با بغل متحد. تنها توجه میکنید یعنی شما باید با یه نفر همراه میشوده که اتصال داشته باشه یه نفر باید با شما همراه باشه که اتصال داشته باشه همینجوری این مسئله یه نفر باید روزی کردیت کار داشته باشه که این کارتر رو بزنه کاری انجام میشه نداشته باشه میشه راه فردی راه فردی رو چی گفتیم؟ یادتون هست؟ باید فردی حرکت کنه نه اینکه بسته باشه دقت بیکنید نه اینکه بسته باشه راه فردی اینجا توضیح دادیم که مقاومت آر انسان خدا خاطرتون هست اینو خب مثلا من خودم نه معلمی داشتم نه کسی اتصال داده نه هیچ چیز این بوده این اتصال بوده خب شمس خودش متزل شده ولی مولانا رو شمس متصل کرد ببخشید این اون وقت با عدل خدا تناسبی این... نداره بله حالا شما می میبینید که نداره اتفاقا عدل اتفاقا عدل این اتصال جمعی یه چیزیه شما برو تنها ای بانکی تقاضای وام کن ببین بهت میده ازن اون ببین ازن جواب سلام میده اما شما با بغل دستید برین یه شرکت تشکیل بدهیم بگیم ما با سرمایه سر زار تومن شرکت فلان فلان رو تشکیل دادیم حالا برید توی اون بانکه باز یه جواب سلامی بهتون میدن این فرق اعتبار اعتبار زمینی اعتبار آسمانی فردی میخوایی بری برو اما تا بگی اتونی خب ادونی استجابت لكم میخونید تاجا اما خوندن دارین تو تا گفتی خدا نمیگه بفرما برای چیه میگه بذار بینم به مرحله جامعه دران یعنی باید رسید باید اون اشتیاقه به یه حد حسابی برسه وگر نه اگه قرار بود هر کی میگه خدا بگن بفرما خب فرق یه نفر که مشتاق هست یه نفر که نیست فقط میگه خدا خب فرق اینا چیه ادالت همینه عدالت این مقاومت آره این مقاومت که اجازه نمیده هر صدای تا گده خدا اونم بگه که بله این مقاومت در واقع خودش نمودی از ادالته بنابراین شما میبینید که توی اجیدهای فردی خود تعداد کمه ولی جمعی نه جمعی الان افرادی که میان جمع اثبات کنن گفتیم نه اشتیاق میخواد نه ایمان میخواد عقیده نمیخواد ایه هیچی نمیخواد و اقعاید یه چیز میخواه که با بابا بی باش تمام شد این هم که دیگه خیلی سرمایه گذاری عظیمی نیست دیگه. خب بی بود باید باشی دیگه تا ببینید چه خبره درسته یا نه هیچ چی نمیخواد. این مسئله و در واقع حالا یه خودکار کردیم و اومدیم میبینیم که نه این عدالته چون میکانزمایش دستمون هنون مکانیزمش برای اون ملموس نشده چطوریه خب ولی وقتی اومدیم ملموس میشه اونم معقول میشه نه اصلا درسته درسته درسته غیر از این بود اشکال داشت خود جان یه فرد به اگه با طبیعت داشت ببینید موضوع سر اینه که در بحث عالم وحدت گفتیم صالح کسی که با دیگران به صلح برسه بعد دیگران یه رکن مهمی در ماجرای کماله خب اونجا گفتیم صلح با هستی اینجا میگیم صلح با دیگران دیگران یعنی شما به راحتی ممکنه با هستی به توافق برسید همینطور هم هست توی این مسیر که ما داریم میریم به راحتی با خدا به سلح میرسیم با هستی هم همینطور با خودمون هم همینطور اما دیگرانه که مشکله هستی کاری نداره اینجور همین الان همه به شکلی با هستی که از کردم توی مسیح خوابیده راحت هم میشه همه چی حل میشه. نه. مشکل ایشونه. مشکل ایشونه. و ما این اعتصام و به حبل الله اینه که ایشون الان باشون به وحدت رسیدن شرط قضیه است. و این کردیت رو ایجاد میکنه. این اعتبار رو ایجاد میکنه. وگرنه شامل یه برنامه دیگه میشه در حد و صورتش راحل هست خب بریم سراغ این مطلب هم بگم سوالتون یارتون نره شما بله شما توی اون اقتباست که ما میگرفتیم که تمرکز نکنیم به روخه خاصی و خدایی اسکم هدایتش نکنیم مثلا مورد ولی الان در مورد این درمان موزعی خب دقیقا تمرکز میشه میشه که مثلا ما این کار رو برای خودمون انجام بدیم در مورد اینجا وقتی با شعور کیهانی با هوشمندی داره کار میکنی البته اینم حوشمندی ها منطور اینجا مجری شمایید اینجا فقط شما سویچ میزنید اونه که میاد کارها رو انجام میکنه و ما اونجا مداخله میکنیم مثل شاگرد بخواه تو کار اوستا بره بگه این کار اون خودش اوستاستی که ما سویچ رو زدیم اومده دیگه میدونه کجا بره و ما اگر بیایم گرات بدیم و چیز کنیم و تعیین تقریف کنیم و, و اینجا برو اونجا برو این اختلال ایجاد میشه اما اینجا به من اختیار دادن به شما اختیار دادن خودشون دادن میگه آقا اگه خواستی این کارم بکن ما سپورتت میکنیم خب حالا منم امتحان میکنم ما امتحان میکنیم دیگه یعنی هوشمندی پشت اینه نه دست من بله. خب یه وقتی دو چهار غرور نشی می وقتی حالا پشت اومسه اینه چون شما دو تا کار انجام میدید اینو تجربه میکنید مشكله دوچاره چهار ممکنه شبکه منفی میاد میگه دیدی چه کردی دیدی دست دادی دیدی دست گذاشتی ازن بلان شد بیس شد خب در معرض فریب قرار میگیری حواسمون جمع باشه اون پشتش ولی به من این چیزو داده منم بازی داده که تو هم حالا بیا تو بازی خب بنابر این این کارا رو ما میکنیم تا دوباره نتیجه همونو ببینیم تا دوباره ببینیم که نبود چه جوری بود حالا که هست چطوریه و اینو خودمون با چشمامون ببینیم تا بهتر نتیجه گیری کنیم وگرنه اصلا لازم نیست شما بعد از اینکه اینا رو همه رو تجربه کردید فقط باید از دور با اشاره و بشکن, بشکن و بالا بنداز شما باید کاراتون انجام بدین اصلا لازم نیست دستی بگیرید پای بگیرید چیکار بکنید فقط باید با نظر و نظر بازی حرکت بکنید، کار بکنید. اما الان بهتون میگیم که دونه دونه اینا رو با دقت برید تست بکنید. تا ببینید ما راست گفتیم یا دروغ گفتیم. بله؟ برای اینکه اینجا ما در یک وضعیتی هستیم، یک کلمه بهتون بگیم شما هفته دیگه متوجه میشید. یک کلمه از این حرفا نابجا واشینیدام بیخودی باشه شما تا دیگه چون خودتون دیگه دارید انجام میدید اونجا که دیگه ما نیستیم که اگه ترغیم اگه این اگه اون اگه هر شما باید اجراش کنین دیگه بعد متوجه میشین که آیا قضیه هست یا نیست خب من این موضوع رو همین بگم که سوالتون رو یادتون نره بذارید من این هم راحت بشه که اون مساله رو تکلیف اینجا درمان موذعی رو گفتیم درمان غیر گفتیم حالا الان بیم یعنی منظورم اینه الان میگم در این مورد شما دوباره یه تستی میتونید بکنید اون بار واسه اورنج بود این بار قلبه کبده لوزمه است و یک های اینطوری هست شما در این صورت میتونید مثلا فرض کنید یه تومور تو مغزه خب شما فرزن اگه گوشش رو بگیرید بگید به من بگو چی میشه میگه یک کانالی باز شد رفته اون رو داره این کار رو میکنه میسوزنه چیکار میکنه میسوزنه میبره میدوزه یک کار میکنه یک کار رو جرهای گذارش میگه بزن شما این دستشو میگیری خب میگه چی میشه میگه آره یه چیزی از اینجا اومد اومد رفت روی اون موزه داره کار میکنه, میکنه. خب دستشو میگیری میگه اومد رف اینجا میدم رو کبدم رف رو لو زلمه رف رو قلب اینجا رو میگیری میاد همینطوری پاشو میگیرید میاد مثلا تو معزه کمر حالا هفته دیگه براتون توضیح میدم بیشتر مسئله باز میکنم شما برید اول تجربه بکنید بعد میام با هم صحبت میکنیم شما پاشو میگیرید مثلا کمر داره اون میاد درست روی موزی که مشکل داره پاشو گرفتین خوب. میاد درست رو موضعی که مشکل داره شروع میکنه رو موضعی که اشکالی درشت دیسک نگه همچی هست مسئله هست به دیگه نخواه قط نخواه خب اصلا قط نخواه است و پاشو میگه که آره این کانال اومد نمیدونم چی. خوب میاد و شما در واقع یک کار حوشمندانه ای رو جراحی های مسائل مختلفی رو به این صورت شاهدش میشه میبینید که داره انجام میشه حالا توی این مسئله که شما میگیرید سه تا حالت ممکن اتفاق بیفته یه حالت شکه یعنی میگیرید اون دوچار شوک میشه بیماران اقمایی رو بیشتر این مسئله درشون دارد یعنی شما میگیریدشون خب سرشونه دست پاپ حالا گوش اگر رسید بالای بالا سر یه همچین بیماری میگیرید میبینید که اون دوچار یک شوکای میشه بیماران که مشکلات زائات نخایی مغزی دارن مشکل حرکتی دارن شما میگیرید مثلا ممکنه عمدتا شک بشه یا شک وارد بشه یا اینه که کانال بشه شما میگیرید بعد میگین که چی میشه اون گزارش میده که یک کانالی داره باز میشه خود دیگه این کانالی که اون داره گزارش میده شما چگونه میتونید اینو به اون الغا کنید امکان نداره بتونید این کارو بکنید نهای معضلیه است که تو بعدن همچین چیزی داشته باشی مثلا پاشو میگیرید اون گزارش میده که آره یک کانال ایجاد شده داره حرکت میکنه شما برای اون که و مشکلات حرکتی دارن برای بیماران MSC اینا چهار تا کانال ایجاد میکنید از این پاتامغز از این پاتامغز از این دست از این دست حالا تمام سیستم عصبی ثانویه رو تو جلسات بعد خدمتتون میگم سیستم عصبی ثانویه که علم باهاش آشنایی اصلا نداره خب و باید در واقع خودمون بیایم اینها رو اعلام بکنیم عنوان بکنیم تحقیقاتش رو تکمیل بکنیم خب بعد پس میتونه کانال بشه میتونه تذریق باشه تذریق همون کاناله منطورا مثل یک میله پرو میره تو بدن و همراه با درده کسی داریم تو حالا توی این مسئله کانال و این تذریق رو چون راه دورم انجام میشه ها البته هم لازم باشه خودش انجام میشه کسی داریم کانال تزریق شو چی بوده بله روی شما کار انجام بله، بله. شد بله خب؟ احساس کردم که یه چیزی مثل یه سیخ فرو میرفت داخل زانوم بله و درد شدیدی حس میکردم درد شدیدی حس میکرد خب در مورد کانال چی کانال چند نفر داریم که در مورد کانال نداشتیم کسی معمولا نمیشه نداشته باشیم شاید شما بله بفرمه این خود مگرفون خودم بله من چند ما پیش محره کمرم شکست بعد خبر نداشتم یکی دوست ما طول کشید تا فهمیدم که شکسته بعد وقتی که مراجعه به دکتر کردم خیلی ناامیدم کرد و بعد خودم به خودم اومدم اونی ناامیدی حدود یک ساعت طول کشید یعنی بلی. زمان طولانی نشد بعد خودم با خودم اینطوری اون که شما میگین کانال من به صورت اینکه از طرف مغزم به صورت کانال تو نوخای خودم رفتم و فکر میکردم که با دستم دارم و محرم و درستش میکنم بلی. این احساس بهم دست داد و از اون موقع فکر میکرم که بهتر شدم و هر روزم با همین امید دارم بهتر بله. خب خب از کنم خدمتون که اینه خیلی معمول. خب بیایم سراغ پس این ببینید معمولاً اینها معمولاً روی دیگران اجرا میشه ولی حالا شما رو خودتونم انجام دادیم ولی معمولش اینه که رود دیگری انجام بشه. یعنی شما بهتر خودتون انجام بشه که ملموس‌تر باشه تا خودتون جانم جانم. در حالت فیزیوتراپی منظورتون یا توی یک سری از حالات یک سری از مسائل چیدایی که برخورد میکنید شما به بعض یا ارتباط میدید یا در معرض ارتباط خودتون قرار بگید مثلا تشنج پیش میاد چند افرد داشتیم که تشنج براشون پیش اومده؟ بله بله لرزش بدن تشنج یا حرکات توی این مسئله پیش میاد یا حالت مثلا حالت مثل پارکینسون به وجود میاد تو مرض اسکن نارسایی هایی ممکنه کشف بشه این نارسایی ها در واقع مثلا دشارژ نابجای الکتریکی مغز رو داشته باشه تا ارتواط میده میده دست و پاش میبره یا تشنج پیش میاد تشنج نشون میده که یا سابقه سر اپلپسی داشته یا آمادگی هایی برای یک مسائلی در آینده داره و بعد برطرف میشه حذف میشه یعنی اون دفک اون اشکال اون چیزی که باعث تخریب الکتریکی رابطه میشه که طرف دست و پاش میپره و چی این مسئله برطرف میشه یعنی همه اینها در واقع تزی و تحلیلای خاصه خودش داره ولی بیخود نمیشه که مثلا تابش شما دست پاتون بپره که. خب نمیشه که یعنی باید در واقع توجه منطقی برای داشتیم داشته باشیم تلقینم که نه گربگی <تصفيق> ایشون بوده ای دکتر گفتم بله بله میدونم من شوخی میکنم این خودش نشون میده این تجارب نشون میده که نه موضوع موضوع چیزهای دیگه خب چهانم جنم خب آمارشو با هم میاریم خیر. اجازه بدین این هم سوال خوبی ارتباط الان میخوام بگیریم برای این مسئله دستمون ولی من اینو خدمتون بگم خب اگر قرار باشه شما هر موردی رو دست بذارید خوب بشه خب مرگ و متوقف میکنید که هیچ راندمانی در عالم هستی صد درصد نیست حالا ما چیکار میکنیم ما تجاربمون رو میاریم تا آخر دوره میریزیم روهم آخر دوره میگیم چند درصد نتیجه گرفتیم هر کسی یه چیزی میگه میریزیم روهم میانگینشو میگیریم میانگینش طبق تجاربمون تا الان به ما نشون میده که حالا الان نباید بگیم باید بذاریم آخره سر هفتاد درصد سی درصد و اصلا نمیخواییم چون مرگ نباید متوقف بشه هفتاد درصد حالا منظور از هفتاد درصد چیه؟ منظور اینجاست که اگه صد نفر رو ما بشونیم هفتاد نفر از اون صد نفر مشکلاتی رو که دارن حالا هر هرچی هست حالا جوابش شما میاریم آرتروز نمیدام چی؟ هرچی که نمیدام میگرن، آسم، آرتریت آر... هر چی که هست، تاثیر و دیابت بحث روی قند و تیروئید و اینا که گزارش رو امروز داشتیم، جریان آزمایشات خون، چیزایی که اینجا داشتیم، همه اینا رو شما اصلا فرق نمیکنه که چیه. هیچ کدوم از اینا نیست که بتونیم بگیم نه این دیگه نمیشه. بعد لزوما نفر رو اگه مخلوط در همشونیم هفتاد درصد. اگر بیایم نه، تیپ‌های جدا جدا جدا جدا جدا مثلا یکی خانمای دکترمون انجامان تالاسمی ها سال گذشته با گروه تالاسمی ها کار کرد نتیجهش حیرت انگیزی هست گزارششون هست بسونم هستن بنابراین چه به صورت کیس های خاص و چه به صورت جمعی و گروهی الان کلاس گروهیه یعنی در همه چی داریم حالا بعدا چیز میکنیم دیگه پرسد هست بهتر برسی میکنیم هفته درصد میانگین مخلوط البته روی مسئله اون تالاسمینا خیلی بالاست یعنی بالای 90 درصد حیرت انگیزه خب یعنی آزمایشات خونشون هست که اینور قبل از این و بعد از اون صرفا البته با مسئله آزمایش خون خب این نشون میده که یعنی حالا من دیگه روم نمیشه بگم همشون تقریبا تغییر داره ولی به هر صورت حالا من چیز خودم معمولا کم میکنم تو این آماری هم که شما هم میارید من کم میکنم یه چیزش رو خودم آخری میگیم هفته درصد سی درصد رو نمیخوای به ذرا نبایستی که تاثیر بشه چون ما دیگه آدم آدم میخوره بنابراین شما هر کدوم اگر روی ده پونزه نفر بیس نفر کار بکنید یه آمار دستتون میاد که چطوریه خب یه اعتباط بقرار بکنیم تا این موضوع رو خب الان درمان غیر موضعی رو استارت بزنیم اینم که مادر مثل چی ببینید شما باید کار بکنید گزارششو ببینید که چه جوریه؟ ببینید چیه؟ بیماره ژنتیک و نیدونم چیه؟ ببینید من الان خدمتون عرض کردم که ما رو همه این نمونه ها جوابای مثبت داریم. اما شما خودتونم کار بکنید برامون نتیجه بیارین که نتیجه گروهیمون چیه اگه موردی دارید کار بکنید هر موردی که در دسترس دارید کار بکنید و ببینید نتیجه چطوریه خب ارتباط برقرار کنیم سوالاتتون یادتونه راه برقرار بکنیم چون بعضی از دوستان ممکنه بخانن زود تاشی ببرن بزنید ارتباط برقرار کنیم دو سه دقیقه ارتباط کشما رو ببندیم ارتباط رو برقرار بکنیم هدف چی چیه؟ الان میخواییم تفیز درمان غیر موزعی یعنی همون کانال زدن شوک نمیتونم اینا خب باید چرا یه نفر رو بیرون بگیره شوک نمیشه چرا یه نفر رو بیرون بگیره کانال جاده نمیشه چرا یه نفر رو بیرون بگیره تدریق نمیشه میلی تو بدن را نمیبته خب؟ اینو الان در واقع پسیه آه حالا ارتباط برقرار بکنیم ارتباط برقرار بکنیم بله بله همینطوریه دیگه خب خب شروع میکنیم خیلی ممنون متشکرم. یه موضوع دیگه هم خدمتون بگم که بعد یه خورده سالاتو بعد بتونیم پاسخ بدیم یک موضوع که وقتی ما از راه نزدیک کار میکنیم از راه نزدیک ممکن مورد هدایت شبکه قرار بگیم چطوری؟ مثلا ما مقابل طرف واسطادی میگیم خب شروع شد به من بگو چی میشه و بعدی رفت ببینم که من به نوی هدایت شدم بدون که دستم بدونم یا کنترل روش داشته باشم میبینم که دستم مثلا اینطوره شد حالا اگر از من بپرسن چرا درستتون اونجا شد من نمیدونم در اختیار من نیست. خب دوباره اینجا اون بحث ناس اینجا وقت بیش می میاد. خب این, این دیگه چیه؟ و در واقع کارهایی صورت میگیره که من نمیدونم عامل اجرا هستند در اختیار یک بخش دیگه و در واقع به نوعی هدایت میشم. حالا اینا رو البته تجربه بکنید. بعدا بیشتر بهتر با هم صحبت میکنیم جوان هم ببینید من که منظورتون از اینکه ناخداگاه انجام میشین هم نمیدونم اینکه الان هم برای اینکه گیج نشیم چون بین تمرکز و بین زیر نظر گرفتن الان یه جوری دچار اختلاف نظر شدیم ما در نهایت شما میاد در دور هفت به بالا متوجه میشین که اصلا تمرکز ما نداریم ما مثلا گستردگی داریم ارتباطهایی داریم که گسترده یعنی گسترده شدن در سطح عالم هستی. گستده شدن در سطح عالم هستی استراتژی حرکت ما ولی خیلی جریان ها اومدن و زندانی شدن در یک نقطه و یک چیز و یک عبارت و یک بلان استراتژی حرکت شونه ما اصلا تمرکز نداریم. ازان هم اصلا کسی رو برای همچ چیزی. آماده نمی کنیم اونا هم که تمرکز کار کردن به نوع ملکه های ذهنی پیدا کردن تازه باید شرط ها رو به هم بزنیم برای اینکه اونجا میخوایم گسترده بشیم در سطح آلم هستی خب حالا این خودش تعریف های داره دیگه بنابراین اصولا ما چیزی به نام تمرکز نداریم ولی الان ممکنه شما رو یعنی اینکه که تفیز هست اتصالتون حلقه شما شما هیچی ما قرار کاری بکنیم هیچ بذارید این میکروفون رو من بدم خدمت شما خوب ما ببینیم که چه خبره وقتی شما از ما میخواییم که آماده بشیم برای این ایجاد آمادگی این اسطلاحه این اصطلاح آماده چه چیزی شدیم کتابمون رو همونو گذاشی میده خودکار میده آمادگی خاصی نبود فقط خودمونو جمع جور کردیم کتابمون ها دستمون دفتر دفترمون نیابده روز زمین همین کار خاصی نبود که آماده چیزی بشیم این فقط برای این بود که تازه بستن چشم الزامه نیست تازه هیچ کدوم از این قدم هم نیست اه بنابراین اه ما فقط برای اینه که شما یه چیزایی اگه هست متوجهش بشید میگیم اینطوری و اگر نمیتونیم بهشون میگیم که خب برو خب اینو چمکد تا... برو اصداد ببخشی اینه رو به صورت مطالبت اردی گفتید و اون چیزی که باز بالاخره اون متربی اون کسی هم که اشها گرده بالاخره یه نقش باید داشته باشه تا بتونه اون چیزهایی که بهش تفهیم شده به نفع احسن یاد بگیره یا اینکه بتونه توی اون وسیله ترمازاتش بیش بره یعنی من که میخوام از مثلا بغل دستیم قوی تر بشم توی این مسئله باید بدونم که چه کار کنم که بتونم توی این مسیر هر چی سریع قوی تر بشم فقط صرف انتظار داشتن که یه چیزی به من برسه که ببینید اینجا قوی تر و ضعیب تر نداریم اینجا امانتدار امانتداری امانداری. امانداری بهتر، امانتداریه بدتر نه. ببینید اینجا بحث امانت بودن امانته اون شعور الهی دست ماست حالا چه جوری از اندازه‌سازی کنیم اون لحظه بعد فکر به شعور الهی و به این جریان به قول معروف اه اه انرژی که به ما میرسه انرژی نه. ما انرژی نیست اینجا اینجا اصلا بحث انرژی نیست گفتیم این چیزی که باش کار میکنیم آگاهی آگاهی نه ماده دست نه انرژی هرگز اسم انرژی رو نیاری درست شد یا نه این قضیه که شما دارید کار می کنید. مسلسه یادتون است که نه مادس نه انرژی آگاهی است. کار با هوشمندی است. ما فقط کارمون چیه؟ با هوشمندی است، با انرژی نیست. درست شد یا نه. حالا بحث قوی و ضعیب و بحث پرو بوددن که به عنوان مثلا شاگرد و برران این صحبت ها. هرچه ما بهترین مطالب رو بفهمیم، بگیریم، بهتر انتقال بدیم، دین مطلب رو بهتر ادا کردیم. خب، موضوع همینه و بحث ضعیف و قوی نیست. شما ارتباط برقرار بکنید انگار ایشون یا ایشون یا من یا اون هیچ فرقی بین توجه کنید شما که سوال برمیدین، هیچ فرقی بین هیچ کدوممون نیست. فقط بحث اینجاست که یکی امانت داره بهتریه یکی نه یکی جدی میگیره یکی یکی نمیگیره خب ببخشی یعنی با صرف حضورتون جلسات به اون نتیجه ایدانون میتونیم برسیم دیگه من امیدوارم که آمار پایانیمون تا حالا اونطور که نشون داده شما چرا اینجا نشستین چرا تشکا بردین من اینجا نشستم که بلاخره به اون نتیجه مصروبه خواهدی به چجوری برستم رو هم باید تمنیم شما چرا اینجا تشبه آوردین؟ چی باعث شد که اینجا سردر بیاریم؟ بلاخره من با معرف اومدم اینجا نو شما فوق... پس یه تحقیق اولی قرار بوده داشته باشید چون ما تبلیغات داریم نه جلسه معارفه داریم شما پس میبایستی تحقیقاتی میکردین خب حالا تا امروز خدا را شک که همه گروهها اومدن دست پر رفتن امید داریم که این گروه هم دست پر باشه به شرطی که به شرطی که کمکاری نکنید ببینید اخلاقا همه رو معذب میکنیم که کمکاری نکنن توی این چند هفته بیان و واقعا این مسئله رو به تست بکشن تا گروه گروه همچین جونداری عذاب در بیاد و نتایجش برایش ملموس باشه طبیعتا اگه گروه کمکاری بکنه چی میشه گروه کمکاری بکنه چیزی معلوم نمیشه همه باید همینگر رو نیا کنید بعد یه موضوعی که هست... یک موضوعی که هست بعضی از دوستان حالا طبق تجارب ما تشریف میارن، زحمت کشیدن، تشریف وردن ولی همش دیگران رو نگاه میکنن ببینن که ایشون چی پیدا کرده سه چهار هفته فقط بقیه رو نگاه میکنه فکر نمی که خودشم جز بقیه است، یعنی بقیه هم به اون نگاه میکنن و منتظره ببینه که اول بقیه پیدا میکنند بعد بره یعنی میبینه که هفته پنجمه این تازه متوجه میشه که بابا یه خبرهای هست حالا به جنبه این پنج هفته رو جبران کنه من تقاضا میکنم خواهش میکنم که دوستان اصلا معطله کسی نشن هر کسی خودش باید تجربه کنه و به تجارب دیگران درسته در مجموع آمار قراره یه حرفی بزنه اما هر کسی سعی کنه خودش تجربه بکنه و این گروه رو قوی میکنه گروه رو همچین اون نتیجهشو براش ملموزتر و مطمئن تر میکنه آیا دکتر این سوال داشتیم؟ بله سوال جناب دکتر این بود که آیا اشتیاق ما در درمان دیگران اثر داره یا نداره ما نمیتونیم بگیم بی اثره اما یک تحقیقاتی بکنیم بریم بغل بیمارستان ها تخت بیماران ببینیم چه کسانی نشستن اونجا که مادرانی که میخوان بچهشون خوب بشه همسرانی که میخوان خوب همسرشون خوب بشه خواهران و برادرانی که میخوان خاهربدن با اشتیاق خلاصه میخوان که این خوب بشه ولی نمیشه توجه برمودین یعنی اینه که من میل دارم بیمارم خوب بشه لازمه ولی کافی نیست اما شما تن طرف نمیشناسید، هیچ چیزی ندارید امتحان کنید، بیرید اونجا پازید دارید، خب چطه؟ بدان خوالا چش توبند، ببین چی میشه، بعد رو بیرید که یه چی داشت توجه برمودین، بتونید که اون مراحل رو که اون هید داره ته میکنه بدون که اون کرده باشه، اون اتصال نداره توجه میکنید موضوع اینجا یک بحث است که ما به این هوش جمعیه باید متصل باشیم تا اون هوش جمعه رو به کار ببریم این مسئله است و اگر نه بقیه چیزها جانم بفرماد، بفرماد، بفرماد ببخشید، خواستم بپرسن میکروپون رو ایز... بگیرید کسایی که هیش هستی نمی کنن <تصفيق> ببخشی خواستم، سالکم کسایی که هیش هستی بهشون نست نمی ده چی کار باید کنن <تصفيق> <تصفيق> خب، ازدازه بدین امروز چندین بار این سوال ما پاسق دادیم یه بار دیگه هم نداره یه بار اجازه بدیم عزیزانی که حس نمی قرار شد که بیان به مبازات همدیگه تا مسئله رو جلو بریم یکی اینه که کار فردی توضیح دادیم که اونها در معرض اسکن هستن دارن مسائلشون حل هل... یعنی دنبال میشه. بحث کار جمعیمونو این دوستان محبت بکنن تست و آزمایش آزمایش رو متوقف نکنن هر آزمایشی که شما بکنید یه ضربه به اون نرموزار وارد میکنه کمک میکنه که این هم روی اون نرموزار و روی اون قفل ذهنی اینجا قفل ذهنی، افسردگی، تشتت ذهنی حالا از چیزای دیگه هم داریم دورهای دیگه آشنا میشین باهاش ولی برای ما مهم نیست. خب بنابراین اینو که انجام میدیم کمک میکنه به متقاعد شدن اون نرم افزاره داخلیه. یعنی وقتی انجام میدین یه مورد، دو مورد، سه مورد چون قفله یه دفعه شکسته شد. ما اینقدر از این تجربه داریم که خدا بدونه. اینقدر آدما شکستن که مثل بوتون آرمه خب نفوز نمی کرده آدم هایی شکسته که توی یک دیواره سربیه عجیب غریب <تصفيق> نگران نباشین بله بفرمایید ببخشی درستان بفرمایید تفیز یعنی چی استاد تفیز خب این هم یه سؤالی سؤال مشکلیه یعنی در اختیار قرار دادن ارائه کردن به منظری اینه که حالا شما صاحبش باشین نه امانت با امانت فرق میکنه در اختیار قرار دادن نه به صورت امانت البته در اختیار قرار دادن این تفریص شد یعنی این در اختیار شما قرار گرفت دیگه میتونید استفاده کنین همه مطالبش هم خدمتتون گفتیم و دیگه خودتون به اختیار ببخشیم وقتی الان جا تمام شه بفرمایید. بیماریهای مزمن و بیماری مثل سر و هم با یک بار اتصال از بین میره؟ ما اینجوری گفتیم؟ نه، می خوام بدونم. تونت. اولا مزمن و حاد نیست. هیچ فرقی با هم ندارن. بعدم ممکنه آن در یک لحظه درمان توقع بگیرید ممکنه که یه هفته، دو هفته، سه هفته، چهار هفته، پنج جلسه، 10 جلسه اونو شما باید دنبال کنید. بعد یک مسئله که هست خوشبختانه تو این رابطه اینه که خوب توجه بکنید شما کار بکنید یه جلسه دو جلسه متوجه میشین که پایده داره یا پایده نداره یعنی یه جلسه دو جلسه سه جلسه میفهمید وقتتون رو دارین طلب میکنید یا نه یعنی اثر باید مشهود باشه اثر بفر بعد فایده نداشیکون بفرمایید چند بار داش برنگردم دوستان ساعت دریاب لای محافظشون به ما یادشون نره سوگندامه هاشون رو با خودشون نبرن بذارن که ما باید امضا کنیم بهشون تحویل بدیم همراه نبرن چون دریاب لای محافظ منوط به این سوگندامه هست سوگندامه هاشون رو تحویل جناب آقای این ساعتی رو که مدمود لای محافظ اعلام می کنیم همین امشب سال اول اگر لای محافظ قطع بشه آیا میشه بازم اسکن کرد سال دوم و اگر قطع بشه چه اتفاقی میافته ؟ بله ببینید قطع بشه ما متوجه میشیم که یه جوری رها شدیم، یه جوری کات شده. حالا دیگه اصولا من معتقدم به این قضیش فکر نکنیم یعنی. اونطوری حرکت کنیم که ما تخلفی که اونجا هست انجام نمیدیم اتفاقی هم نمیمکته اینطوری حرکت کنیم میتونی هر ساعتی که شما دادیم بدین فردا بدین صبح بدین نمیدونم یک بار کافیه فقط یک بار کافیه